قدرت اراده امشب اهل تبت در ساعت معمول ظاهر شد و بدون حال و احور پرسی آغاز به سخن کرد ربازار تارست سر موضوع بحث امشب قصد دارم درباره قدرت اراده در بشر یکی از مهمترین جنبه های صفات است سخن بگویم کل عالم چیزی جز انعقاس جهان های کیهانی درون نیست از گذشته جز اندیشه ای باقی نمانده اکنون یک بازتاب است و آینده یک رویاست. است جهان صحنه دائمون تغییری از شرایط موقعیت و وضعیت است که بشر می آفریند. هر چیزی، هر فکری و هر عملی در این طبقه خاکی فقط و فقط انعکاس جهان درون آدمی است فقط جهان درون واقعی است باقی توخمی بیش نیست چه ارتباطی بین این حقایق و قدرت اراده وجود دارد؟ ارتباطات بیشمار زیرا راهی که ما از درون به بیرون طی میکنیم به قدرت اراده ما بستگی دارد همه افکار بشر ابتدا به درون رفته و سپس به جهان بیرون باز میگردند. بنابراین ذهن آگاه او باید پاک باشد هرچه هم که از مراقبه حاصل می شود باید خالص و منزه باشد اما این به قدرت اراده بستگی دارد که اندیشه خود را آنقدر بر روی یک ثابت نگه دارد که قدرت یک بتواند فعالیت آگاهانه خود را از طریق او آغاز کند و اما درباره اراده باید بگویم که قماش آن چه اراده انسانی باشد و چه اراده خداوندی یکی است تنها تفاوت بین آن دو از این قرار است که در مورد اول کل و در مورد بشر جز از کل است در مقیاس کل ایزد متعال یا قدرت اک عمل می کند و در مقیاس جز هر فردی به بخش محدودی از آن دسترسی دارد. به اینگونه این بگویم که تفاوت بین اراده انسانی و خداوندی همانند تفاوت بین شاخ و برگ و تنه درخت است درخت یکی از نمادهای مورد استفاده در توضیح اک است که تنه آن را قدرت اک شاخههایش را قدیسین و شاخ و برگ آن را بشریت برشموردند اراده استادان اک اراده خداست کلام آنان کلام خداست مزالک شاخه های درخت به شمار می‌آیند چون حقیقت فقط اراده خداست این را هم بگویم که تحقق یک آرمان حاصل تلاش فرد بر روی اراده مطلق است که گاهی به اقتضای نیروی اراده شخصی یک فرد اگوی در هماهنگی با اراده خداوندی کار می کند. تشخیص اینکه آیا در هماهنگی با اراده خداوندی عمل می کنیم فقط با مشاهده نتایجی که از تجربیات خود میگیریم گیریم ممکن می شود. کسی که نتیجه را از پیش میداند روانبین یا پیشگو نامیده می شود. هنگامی که در هماهنگی با اراده خداوندی به سر میبریم زندگی چون رؤیا به نظر میآید. گویی نیاز به هیچ کوششی برای تحقق نیازهای خود در زندگی نداریم مشکلات بدون تقلا برطرف و نتایج لازم بی نیاز از تلاش حاصل می شوند از سوی دیگر کسانی که کوشش می کنند با استفاده از اراده انسانی به مقاصد خود دست یابند هر هرچه تقلا می کند نتیجه چندانی نمی گیرند آنگاه که آدمی برای تحقق خواسته های معنوی خود کوشش می کند علا رغم این که تمامی مواد لازم را در دست دارد در واقع ارادهش را با اراده من یا آنچه اراده خداوندی مینامیم نامیم همسو کرده است موفقیت یا شکست متناسب با هماهنگی بین اراده فردی و اراده خداوندی است. اینک با علم به اینکه اراده فردی چیزی جز منبعی از اراده خداوندی نیست، چگونه می‌تواند از هماهنگی خارج شود؟ این را بگویم که می‌شود هم جزئی از اراده خداوندی بود و هم در با آن فعالیت کرد. قدیسین فقط نقشی را تعلیم دادند که در هماهنگی ایفا می شود حتاب مقدس می گویند با شیطان مقابله نکن با این وجود بیشتر آدمیان به امیالی شیطان همچون تنفر در مقابل تنفر دیگران یا خشم در برابر خشم تندر می دهند قانون ارتعاش بخش مهمی از این تحقیق است هرگاه عباطف کسی عمیقا متلاتم شوند به طور طبیعی نزدیکانی را که در اطراف ویوه سر میبرند تحت تأثیر قرار میدهد مگر کسی که مورد حجوم این عباطف واقع میشود قدرت حفظ ثبات آرامش و هماهنگی ارتعاشات خود را داشته باشد چاره کار پرورش عادت بردباری است چشم دوار گردباد همیشه آرام و ساکن است در حالی که اطرافش ویرانگری قوغا می کند این الگو را به ساختار انسانی یک فرد اطلاق کن و ببین آن خلوتگه قدس کجای درون او نهفته است هنوز هم راضی هست این حریم پنهان باید در هماهنگی و آرامش حفظ شود چون در اینجاست که تماس با اراده خداوندی من برقرار می گردند و مولکول‌هایی که در این حریم حضور دارند با میل آدمی در یک چشم برهم زدن تغییر می کنند و در حین تماس با خیش خداوندی من می توانند خود را حفظ کنند آنگاه هوشیاری قدرتی که از این درگاه جاری می شود آدمی را در جهت برترین مساله علت کیهانی برمی انگیزد. با این وجود چنانچه اراده انسانی تغییری بر جهت این قدرت اعمال کرده باشد فعالیت حاصل به احتمال غریب به یقین یک اقدام خودخواهانه خواهد بود این را هم به خاطر بسپار تمامی تمایلات و افکار خود موجب موجه شکست در نیل به آرمان ها می شود ما باید به یک همکار آگاه در کیهان بدل شویم تا شایسته والاترین هدیه های خداوندی باشیم بنابراین بشر نمی تواند اراده خود را مترادف با اراده کیهانی به شما برد تا روزی که ارادهش را با اراده سوگماد هماهنگ باشد. به این ترتیب لازم است با توصیعی کیفیاتی همچون بردباری تحمل و مداومت هماهنگی با اراده هم آن خود را تمرین کند چون نفس همیشه در خدمت پیش تحتانی عمل می کند نفس بشری میاندیشد دیگران را چگونه در خدمت خود گیرم این نفس انتظار دارد همگان با نحوه زندگی او هماهنگ شوند. به همین علت جهان آکنده از اسیان است کتی که آرزوی پیروزی دارد باید زندگیش را به اراده خداوندی با گذار کند باید بیاموزد چه میتوان کرد که مصلحت همگان در آن منظور شده باشد با مقابل هرگز پیروز نمی شود طریق موثر فروتنی یا هوشیاری پاسدارانه عالم درون و حفاظت از سکوت و آرامش آن خلوتگه پنهانی است که در آن ارتباط مداوم با خدا میسر می شود. نخستین درس در توسعه قدرت اراده پرورش های عشق است چون عشق به تنهایی می تواند مرکز قلب ما را از از نفوذ کیفیت‌های منفی نگداران بیش کنترلی یا قدرت تسلط برخیش دومین قدم در راه هماهنگ ساختن اراده فردی با اراده خداوندی است و بزرگترین جهش محسوب می‌شود طی این مرحله به تناسب تلاش فرد ممکن است بسیار سریع یا بسیار کند صورت گیرد ازا اگر لحظه درنگ کرده و تفاوت میان انسان و حیوان را ارزیابی کنی عظمت تسلیم به مشیت خداوندی مرا درک خواهی کرد خودخواهی بشر خود را در میل به بهرهبرداری بهینه از هم به ظهور می رساند با پرورش عشق نحوه عمل نگرش و درک او متحول خواهد شد قلب تنها هنگامی خوشنود می شود که بداند دیگری هم خوشنود است شعف حقیقی در صحیم شدن سرور و شادی خود با دیگری نصیب می شود تو می توانی هر که تصمیم بگیری با اراده خداوندی من یکی شوی. دشواری کار همین تصمیم گیری است قدم بعدی به مرحله اجرا گذاردن تصمیم است تنها آرامش و هماهنگی موجب استیلای احساس موضوعی می شود که اراده خداوندی را در راستای اراده انسانی قرار می دهد برکات بشر به برکات خداوندی کلماتش به کلام خداوندی و شعاع حضورش به جبه خداوندی ودل می شود چنانچه به نظر محدود آید چنانچه به نظر محدود آید از این روز که اراده او در اراده کل مستحیل و به اراده خدا نقل شده است تا همین جا برای بحث امروز کافی است شب ب خیر